اندرزنامه پیمان گواهگیری به نام ارمزد بخشاینده بخشایشگر مهربان در خجست آین پیوند زن و شویی که به روش دینوه مازدی هستنی به گاه فرخونده در فرخ روز از ماه در اینجا برپاست خشنودی دادار ارمزد رایومند و خروهمند به یاری امشاست پیروزگر به شادی فروهر اشوزرتوشت اسپنتمان و به همراهی مهر و سروش و رشن راست و به گواهی نیکان باشنده در این جشن باشکو من که موبدنیک نام هستم از شما بهدین دخت بهدینان میپرسم که بهدین پور بهدینان را به داد آین دینوه مازدی اصنی به همتنی و همروانی به همسری خود میپذیرید فضیرید و پیروز باد. از شما بهدین پور بهدینان میپرسم که بهدین دخت بهدینان را به داد و آیین دین وحی مازدی اصنی هم و هم‌آزدی استنی به همتنی و همروانی به همسری خود میپذیرید به باد به خوجستگی و فرخندگی من و هماوهان باشنده در این جشن از اهورامزدا دانا و توانا آرزومندیم که به این پیوند زن و شوی پویایی، پایندگی، مهر و شادکامی همراه با افزونی فرزندان نامور و خاسته فرارون شادیاور دیرزیوشنی و سرانجام نیک ارزانی بدارد اینک به چند اندرز شایسته دینی گوش فرادهید و از آنها پیروی کنید تا سبب خوشنودی اهورا مزدا گردد شادکامی و نیک بختی آسایش و آرامش را در زندگی مشترک شما فراهم سازد نخوست ستایش و نیایش آفریدگار هستی بخش است زیرا هر گونه داد و دهش را در زندگی به ما ارزانی داشته است دوم به پیانبری زرتشت سپنتمان و به دین وحه مازدی استوار مانید هراینه به اشوی راستی گرایید و با اندیشه گفتار و کردار نیک در جهان زیوید سوم به روان شادی در و دستگیری نیازمندان در برپایی گهنبار کوتاهی مکنید در پنجه و فروردینگان که روز ویجه هماروانان است از درون و میازد آفرینگان آنچه دست باشد به تا روان و فروهر نیاکان خوشنود گردند و شادی ارزانی دارند چهارم مراسم سنتی برای یاد بود در را انجام داده و نیازمندان را با دهش خود یاری رسانید زیرا خوشنودی روان و فروهر مینوان در انجام کار نیک از سوی گیتیان است پنجم صدره و کشتی را که نماد پیروی از آیین راستی است پیوسته با خود داشته باشید و فرزندان را سفارش کنید تا به هنگام خردمندی و پذیرفتن آیین راستی صدره شوند و در همگاه به داد دین وح به ستایش و نیایش ارمه پردازند ششم از مادر و پدر و استاد سپاسدار باشید و آنها را گرامی دارید زیرا خوشنودی اورمزد با خوشنودی این ستن نیز فراهم می گردد. هفتم از روزهای ماه یکی را برگزینید و در آن روز بیشتر به داد و دهش پردازید و اشویی را گسترش دهید تا اهورا مزدا یا باشد و از هر گونه کجروی و گمراهی باز دارد اینک روزی را که برگزیده اید نام ببرید هشتم در زندگی باید راهنمای دانایی برگزینید تا در پیشرفت کارها راه گشایتان باشد زیرا دانش پراکنده است و کار با رهنمونی دانا نیک فرجام باشد اینک دانای برگزیده خیش را نام ببرید نهم هر هرکس توان که انسان را به نیروی دانایی و گویایی از دیگر آفریدگان گیتی برتر آفرید دادش مردم دوستی است پس دیگران را میازارید نه به منش نه به گوبش نه به کنش بیگانه‌ای که فرار جای و خوراکش دهید و آن را از گرسنگی و تشنگی و سرما و گرما در امان دارید با زیر دستان و کهتران مهربان باشید، سالاران و مهتران را گرامی دارید و به داد و پیام هم شاسمندان که فروزگان اورمزد پاکند راه پویید تا دادار ارمزد از شما خوشنود باشد داد و آین وحمن امشاسمند شاسمند آشدی و نیکندیشی است کین و ستیز باشید، نیکخواه و وهمنشت باشید بدی و از همراهی با بدکاران بپرهیزید دانش اندوزید و خردمندی پیشه کنید فرهنگ گسترید و با کجندیشی مبارزه کنید با دشمنان به داد کوشید و با دوستان نیکی ورزید. داد آین اردی بهشت راستی و پاکیست تن و جان و روان خود را پیوسته پاک داشته از کجی و ناپاکی بپرهیزید عشویی را ستایش کنید و به داد عشا راه بویید زیرا هنجار هستی تنها بر عشوی استوار است. به منش نیک منید به گوهش نیک گویید به کنش نیک ورزید. با همدیگر یک دل و یک زبان بوده از دروغ و سوگند و فریب دوری کنید آتش را که نماد مهر و در درگیتی است گرامی داشته به ناپاکی میالایید داد و آین شهری برم شاسمند نیرومندی و خیشتنداری است در راه سروری و توانگری کوشا باشید شهریاران و رهبران دادگر را یاور باشید و گرامی دارید از فرارونی و درستکاری خواسته اندوزید از بیکاری و کاهلی دوری گذینید خواسته کسان دست میازید و رشک مبرید حیوخشست ارجمند را پیوسته پاک دارید داد آین سپندار مزم شاسمند فروتنی و پیمانداری است در زندگی آزاده و فروتن بوده با همدیگر دیگر دوستدار و مهرمان باشید ترمنشنی خود پسندی مکنید پاک چشم باشید یکدیگر را باور کنید و به هم بدبین مباشید خیشاوندان نیازمند را از خواسته خیش یاری دهید آموزشگاه، بیمارستان و دیگر بنیادهای نیک نهاده چون زمین سودمند و بردبار باشید آن را پاک داشته آباد سازید دادا آیر خردادم شاسپند رساهی و آبادانیست دل خود را شاد و تن خود را پاک دارید زیرا پاکی تن جلوه از عشوی روان است ناسپاسی مکنید اندوهگین مباشید گیتی را به چشم نیک بینید و از اهور آمزده خرسند و سپاسدار باشید آبادی سازید شادی افزایید آب را که مایه سرسبزی و آبادانی است پیوسته پاک داشته و بیهوده از آن استفاده نکنید داداین دادم شاسپند دیرزیوی و جاودانگی است تن خود را درست و توانا دارید از سستی و کاهلی دوری گذینید خانه و جامعه خیش و زیستگاه دیگران را پاک و یش دارید در پاسداری از چهار آخشیک کوتاهی مکنید با افزایش گیاه و درخت سرسبزی را گسترش دهید دارو درمان برزانیان رسانده درد مندان و افتادگان را پرستار باشید باشد تا با سفارش پیامبر ما نشوزرتشت در نیک مننشنی و کردار نیک از یکدیگر دیگ پیشی گرفته و هموار زندگی را به خوشی و خورنمی سپری کنید. یا تاهم ریو هاارت توشششاد چید از چاونکیوش از دا ننگ هوش یا اوتن نام انکه اوش مزدایی شطرم چههورایی یا این دری گابی دادت و یسنم چه وامم چه او جز جز واره چه آفرین آمین سراوش شهر شهر تخم هه تنومانتره در شید راوش آهوریه آسم و هویش تماستی وش داستی اوستا اشایی و هیش بار دیگر از شما به دین دختر به دین و زاده به دین میپرسم که بهدین پور بهدین و زاده بهدین را به داد آین دینوح مازدی به خوشنودی به همتنی و همروانی به همسری خود پذیرفتید خوجسته باشد پس شما بهدین پور بهدین و زاده بهدین میپرسم که بهدین دخت بهدین و زاده بهدین را به داد و آین دین وحه مازدی اصنی به خوشنودی به همتنی و همروانی به همسری خود پذیرفتید خوشست و پیروز باد شنات راوره مزداشم و و اجتماسی و اشتاستی و اشتماعی هیت شای و اشتایی را راانیم از دی ن تو شریش ویدای و ردک که شانه شرت و یاناای چ به مای چشناوت، رای چفر از ازستیای چ فرادتویای دخی مای چشانانه یا شرت، یاستناای چ بهمای چشناات رای چفر از ازستای چ او رایم از دورای و تخار انگ حش ناد را یاستنای چمای چشناوت، رای چفر یا تا هواد <متحدث> یزالتو فرام روتی عطار اتو ششارتی دچا فر او شباب یزوام راتو نیپا یویش مشم اور و تم یبای تایت زرت هوشت رد تات پر و دوش من یعود <متحدث> ما <متحدث> تم اور فرا تم فر او یبای ما دوج زیانام انتزیانم پای ایت ما یسویش اوم نرم دای تیم یوننا از ایش نمیست نمی یاضایه کتم اسناد فرای و میانمش ش اسمه ایستی با او من و من دا توش ایزخ شترم ویلی من دا می زن توش ر، ایتار مع این من دا میز توشت، ایزه او و تمر تاتر ییست و میج مشاام براستی جستام من دا می زن وئی ثاوچه تاچه تا که ایتیچه آیام شاوم در توست رن من اختر و آوچه چیستیچه یا ایش آهن کوش پارویو بودی یا ثاوچه انج هت ابیم ام انج کوش هزینگرم بیش از نام بی وری بیش از نام هزینگرم بیش از نام بی وری بیش از نام هزینگرم بیش از نام بی وری بیش از نام ونگ و چه ونگ و یا آز جه آفری نامی ویس با و ستویش هی تیای چه بوان تیای چه بوش یای تیای چه شیم راست انتیم در غبار اتمنم مشاو چم حبو ایوی فاو چم می شاو چم افرسنگ هی تیم ویس با یا با اش از آو اپام چه گوام چه اور و هام چه تاور با یانتیم و با تا با اش آو دیونام مشیانام چارجین تام احمای چند ماناهی احمای چند مانو هن مانوپاتیه ونگ هوش چاد واو ونگیش چاو اشایو هو و پاور و هیش ابراو راسنتیش در قوارت منو یتن و مجیزش تاوس چا و هیش تاوس چاسرا استاوس چا اشه و رن باتا همین شامس من تنام از چ و دامنام و و سخشت رو عشبه، رو همیست و سخشت رو دور دورباو گثو همیستو نیج برطون هچست بنتهه من یه اوشدام عبیو ورطو و سخشت رو حقش و عظم چیت یو زرتو را، فراتمان مانم چه ویسام چه نام، چه دخیونام چه نگهاو ده نیاو انومتا یای چند انوختا یای چند یا هوریش زرتا اشتریش روست خاطرم چافر نامیم ویس با یاوشان استویششششم وو بیشت مسیحشت هاستی وشت احمایی یتشای بیشت هاییششم یتا راتو بریاتارتو ششتید ونکی اوشت از دام نیکوش یا تنه که اوش مزده ایف شترم جهورای آییم درگو بیو دادت باز دارم یستنم چه ومم چه از جهوز جست چه از آفر چه آفری نامی و تو خوره نیکتوش که توش از نای چه و چه از چه با و احمایی خورن خورنسجر احمایی تن و دروتاتم احمایی تن و بزدوره احمایی تن بو برترم احمایی اشتیم پروش خاطرام احمایی آسنام چیت فرزین تیم احمایی در قام در گو جیتیم احمایی و اشت مامو شانام راو چینکم ویس بخاطرم اشت و خوبه به مستی و اشت آستیم او اشت و احمایی آیشم جسمی آبند که مزدا، جسمی آبند که مزدا، جسمی آبند که مزدا. امی اوت آوشتای اول آزای برتر آگنای ابراز آو تای بنتی آو شاو بر آو تو تباآش اخز آو تای زربانه یا کرانای زربانه دروغ خز آو تای آسم و او بهش تماسی وش داستی وش داحمایی هیات شایم بهش پیروز باد خروه های ویجای ماز نماز دیاس پیروز باد خروه های ویجای وحدی نماز دیاس پیروز باد خروه های ویجای وحدی نماز دیاس نان پیور مزدم شاس بن دان کامه بادی نون بادی نون ترج باد و هوه ویشته مسیوشتا عالی وشته باعیتش آیی ویشته آیشم دندروستی پناه باد دیر زیبش نیاد باد یاتو آهو و اریا تارا چی ششاد چیده چال من کیوش دست دام نیک هوسیاوتانه نام من کیوش مزداهی خشترم چه و را یا ایم دریگو بیاد دادت واسطه نه تندروستی دیز زیبشنی نی اواجات خورن نیکه آفریدگار می نواونو گیتیاونم شاس بن دان میاد دروشن همه بر این دودمان شاد باد آفرین باد همند در کسان را زرتشت دین شاد باد ایدون باد خواهن باد اورمز خمارا را همه انجمن را دین زراتشتی دی را همه به دینان را تندرستی نیکنامی تندرستی زندگانی تندرستی فراخ روزی تندرستی شادی رامش نی، تندرستی تن بهدین داماد و عروس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 یزشن و نیایش رادی و زور و برش نشوی دار ابرهما هما کار و کرفه ها باد رادی باد نیکی باد خوبی باد ایدون باد ایدون ترج باد پیزدان و امشاسمندان کام باد اشان اشم و اجتماسی داستی، اشتاستی اشتا دا احمایی یتشایی و ایشتایی اشم خوجسته و پیروز باد